جنگ گتیسپرگ در سه روز اول ماه جولای سال 1862 اتفاق افتاد. شب چهارم جولای، زمانی که عبرهای توفانزا کشور را زیر بارش باران قلق کرده بودند، لی شروع به عقب نشینی و فرار به سمت جنوب کرد. هنگامی که لی با ارتش شکست خوردهش به پوتومک رسید، آب رودخانه بالا آمده و عبور از آن ناممکن بود، او به دام افتاده بود در حالی که ارتشی متحد و بیروز به دنبالش در حال تعقیب او و بود او هیچ راه فراری نداشت لینکولن از این رویداد داد شد گرفتار شدن لی برای لینکولن موقعیتی تلایی و فرصتی خدادادی برای دستگیری و توقیف ارتش او و خاتمه بخشیدن هرچ سریعتر به جنگ بود بنابراین با موجی از امید فراون به میادی Sollor, ertisch, dat stuurdot, bedunet, eisch, gille, schoor, eij, geng, besor, et, beli, hem, Lincoln, dat stuurdes, robe, miadi, telegraaf, kerd. Se pas, peke, vijje, i, besamte, uferes, dat, wa, zo, tarozo, kerd, wakon, eisch, sari, i, der, inwels, i, het, ras, nisch, an, der, het. Ama, amel, kerd, general, miadi, tje, O, der, i, ren, Lincoln, ras, de boot, en, jan, dat, wa, dat stuurdes, tach, alof, o, tach, شورایی در مورد جنگ و این خبر تشکیل داد. با درنگ و تردید کار را به تعویق انداخت و سپس بهانه‌های مختلفی را که به ذهنش می‌رسید برای لینکلن تلگراف کرد. او مستقیما و به صراحت از هر گونه حمله‌ای به لی خودداری نمود. سرانجام آب رودخانه پایین رفت و لی با همه نیروهایش فرار کرد و از پتوماک گذشت. لینکولن به شدت خشمگین شده بود فریاد زنان از پسرش را به پرسید یعنی چه این چه کاری بود خدای من یعنی چه آنها در چنگ ما بودند کافی بود فقط دستان من را باز کنیم تا بر آنها مسلط شویم اما با این وجود هر چه گفتم و هر چه کردم نتوانستم ارتش را به حرکت درابرم هر جنرالی در چنین شرایطی میتوانست لی شکست دهد اگر خودم آنجا میرفتم میتوانستم به دست خود لی را گوشمالی دهم لینکولن با ناامیدی گزند و زجراوری تصمیم گرفت برای میادی نامه بنویسد البته با در نظر گرفتن اینکه در آن زمان لینکولن در عبارت پردازی و کلم بندی بی نهایت محافظ کار مراقب بود بنابراین در سال 1863 ارسال چنین نامی از سوی لینکولن مادل شدید ترین و سخت ترین توبیخ و گوشمالی‌ها بود متن نامه چنین بود جنرال عزیز به نظر من نکته که تو فراموش کردی ارزش و اهمیت بد اقبالی لی بود که در فرارش با آن مواجه شد به راحتی در چنگ ما بود و حمله به او عودران زمان همراه با دیگر موفقیت‌های اخیرمان می‌تواند به جنگ خاتمه دهد آنچنان که معلوم است و با وضعیتی که پیش آمده مسلماً جنگ ادامه خواهد یافت تو در حالی که نتوانسته ای دشمن به گذشته به آسانی و با تضمین امنیت سربازانت به لی حمله کنی چگونه میتوانی به جنوب رودخانه بروی و با او رو در رو مبارزه کنی؟ حالان که فقط دو ثومه نیرویی که آن زمان در اختیار داشتی را میتوانی با خود ببری؟ انتظار تأثیر چشمگی رو شایسته از تو غیر آقلانه است و من باور نمی کنم دیگر بتوانی اقدام مهمی انجام دهی و لیاقت زیادی از خود نشان دهی فرصت تلاییت از بین رفته است و من از این بابت بی اندازه آزرده و پریشانم به نظر شما وقتی میادی آن نامه را خواند چه کاری انجام داد؟ میادی هرگز آن نامه را ندید و لینکولن هرگز آن را برای اون نفرست داد بلکه این نامه پس از مرگ لینکولن بین کاغذهایش پیدا شد من حدث میزنم و البته این فقط یک حدث است که وقتی لینکولن نوشتن نام را به پایان رساند از پنجره به بیرون نگاهی انداخت و با خودش گفت فقط یک دقیقه تعمل کن من نباید جولو شتاب زده باشم برای من آسان است که در جای خلوت و آرامی چون کاخ سفید بنشینم و به میادی دستور حمله بدهم اما اگر در یتسبرگ بودم و اگر همچون میادی در طول هفته خون و خون ریزی و اگر گوش هایم پر از صدای ناله و فریاد زخمی ها و مجروحان در حال مرگ می شدند شاید من هم آنقدر مشتاق حمله نبودم اگر من هم خلق و خوی خجالتی و محجوب میادی را داشتم همان کاری را می کردم که او کرد به هر حال همکنون آب زیر پول است یعنی آرامی شرایط اگر این نام را بفرستم گرچه احساسات و خشمم آرام می شود اما همین باز می شود میادی برای توجیه خود وادار به تلاش هایی شود و حتی ممکن است مرا هم محکوم کند روی هم رفته این نام احساسات جریه دار میادی را برخواهد انگیخت کارهای های آینده او به عنوان یک فرماند رازایی می کند و شاید او را به استعفا سالاری ارتش وادارد پس همانطور که گفتیم لینکول نامه را گذاشت چون تجربه های ناخوشایند گذشته به او آموخته بود که انتقاد های تند و تیز و زخم زبان تقریبا همواره به نتایج پوچی ختم می شود تیودر روزویلت نقل می کند در زمان ریاست جمهوریم هرگاه با مشکلی سخت و پیچیده مواجه می شدم از سر عادت روی موبل لم می دادم و به تصویر بزرگ از لینکولن که بالای میزم در کاخ سفید نصب شده بود نگاهی می انداختم از خود می پرسیدم اگر لینکولن به جای من بود چه می کرد؟ چگونه این مشکل را حل می کرد؟ اگر بعد از این وصفه شدیم کسی را متنبه و آگاه کنیم بهتر است اسکناس پنج دلاری که عکس لینکولن رویش چاپ شده از جیبمان بیرون بیاوریم و به لینکولن نگاهی بیاندازیم از خود بپرسیم اگر لینکولن این مشکل را داشت چگونه با آن کنار می آمد مارک توائین هر از گاهی از کوره در می رفت و نامه هایی می نوشت که تمام برگ را سیاه می کرد برای مثال یک بار به فردی که باعث خشم او شده بود نوشت چیزی که تو داری جواز دفن برای توست فقط باید دوباره صحبت کنی و من خواهم دید که به آن میرسی یک بار در مورد تلاش ویراستار کارهایش در تصحیح قلطهای املایی و نگارشی به سردبیرش نامهی نوشت و در آن به او دستور داد از این به بعد مطلب را طبق نوشته من چاب کن و ببین آیا ویراستار؟ پیشنهادهایش را در آن خمیره مغز فاسد شدهش نگاه می‌دارد یا نه نوشتن این نامه‌های نیشدار و گزنده باعث تخلیه عصبی او می‌شد و به این ترتیب احساس بهتری پیدا می‌کرد نامه‌ها باعث می‌شدند بخار از سر او برود اما در این حال آزاری به کسی نمی‌رساندند چرا که امسرش مخفیانه آنها را از داخل صندوق نامه خانه برمی‌داشت و به این نحو آنها هرگز ارسال نمی شدند. آیا شما هم کسی را می که دوست دارید تغییر یا بد منظم شود و پیشرفت کند؟ بسیار خوب این تفکر یالیست من هم طرف این طرز فکر خوب شما هستم اما چرا از خودتان شروع نکنید؟ چرا از نقط نظرات و دیدگاه های خودتان شروع نکنید؟ این کار از تلاش برای پیشرفت دیگران بسیار سودمند تر است بله زمنان که بسیار هم کم خطرتر است کنفوسیوس میگوید، تا وقتی که مقابل درب خانه خودتان کسیف و آلوده است از برفی که روی بام همسایتان نشسته است شاکی نباشید زمانی که هنوز جوان بودم و سعی داشتم مردم را تحت تحصیل خود قرار دهم، نامه احمقانه ای به ریچارد هاردینگ داویز نویسنده‌ای که در افق کتابخانه‌های آمریکا از دور جلوه‌گری می‌کند نوشتم. در آن زمان در حال آماده‌سازی ای راجب نویسندگان برای مجله‌ای بودم و از داویز خواستم از روش کارش برایم بگوید. چند هفته قبل از آن نامه‌ای از شخصی به دستم رسیده بود که در انتهای آن نوشته بود: دیکته شده اما خوانده نشده. من که کاملا تحت تأثیر این جمله قرار گرفته بودم احساس کردم نویسنده شخصی برجسته مهم و پرمشغله است بعضا آنجا که خودم به هیچ وجه شخص برجسته و پرمشغله‌ای نبودم دوست داشتم دستکم بر ریچارد هاردینگ تأثیر گذار باشم از همین رونامه کوتاه هم را با جمله دیکته شده اما خوانده نشده به پایان رساندم او به هیچ وجه به خودش زحمت نداد جواب نامه ما بدهد تنها کاری که کرد این بود که آن نامه را به من برگرداند در حالی که با خطی خانا در پایین برگه نوشته بود رفتار بد و نادرست شما با تداوم بدتر می شود درست بود من اشتباه احمقانه ای انجام داده بودم و شاید مستحق این زخم زبان بودم اما به عنوان یک انسان معمولی از آن جمله به شدت رنجیدم و شدت آزردگیم به قدری بود که وقتی ده سال بعد از آن از فوت ریچارد هاردینگ داویز متلع شدم تنها خاطره ای که تا آن موقع از او در ذهنم منده بود و اینک بابت آن شهرم سارم صدمه ای بود که او به من رسنده بود اگر من و شما هم می خواهیم آزردگی خاطر و رنجشی به وجود آوریم که دهها سال برای طرف مقابل من عذاباور باشد و تا روز مرگ ادامه داشته باشد کافی است فردی انتقاد گزنده و حتی نیشدار کوچکی داشته باشیم بنابراین در برخورد با مردم به یاد داشته باشیم که با مخلوقات منطقی سر و کار نداریم بلکه با موجوداتی احساساتی روبرو هستیم موجوداتی که سرشار از تحصب هستند و توسط قرور و خودبینی تحریک می‌شوند. انتقاد تلخ باعث شد توماس هاردی از بهترین رومان نویسانی که ادبیات انگلیسی را پربار و قنی ساخته است برای همیشه نویسندگی داستان‌های خیالی را کنار بگذارد. انتقاد موجب خودکشی توماس چاترتون، شاعر انگلیسی شد. بنجامین فرانکلین که در جوانی چیزی از مبانی آداب نمی و به هیچ وجه موقع شناس نبود تبدیل به دیپلمات ماهر و موفقی شد او در برخورد با مردم چنان چیره دست و ماهر شد که به مقام سفارت آمریکا در فرانسه دست یافت اما به راستی راز موفقیت او چه بود؟ او خودش می گفت من در مورد هیچ کس بدگویی نمی کنم فقط درباره خوبی‌هایی که از فرد مقابلم میدونم سخن میگویم هر نادانی می تواند انتقاد و نکوهش کند محکوم نماید و شکایت کند و حتی بیشتر نادانها این کار را به خوبی انجام میدهند اما لازم است فرد کنترل نفس و ویژگیهای ارزشمندی داشته باشد تا به خصلت بالای درک و فهم و بخشش نائل شود کارل کارلیل معتقد بود انسان بزرگ با نحوه رفتارش با مردم کوچک بزرگی خود را نشان می دهد. باب هوور خلبان معروف آزمایشگر هواپیما و موجریه با تجربه منورهای هوایی از یک منور هوایی در ساندیگو به خانهش در لوسانجلس برمی گشت. طبق توضیح مجله عملیات‌های های پرواز هر دو موتور هواپیما در ارتفاع سی فوتی به ناگهانی از کار افتادند اما او با فوت و فن توانست هواپیما را فرود بیاورد گرچه به کسی صدمه نرسید اما هواپیما بسیار آسیب دید اولین کاری که هوور پس از فرود استرالی انجام داد بررسی قسمت سوخت هواپیما بود همانطور که او پیش پیشبینی میکرد هواپیمای پرواندار جنگ جهانی دوم او که با آن پرواز کرده بود بیشتر سخت جت را مصرف کرده بود تا بنزین اما وقتی به فرودگاه بازگشت در صدت برآمد مکانیک سرویز کننده هواپیمایش را ببیند مکانیک جوان به دلیل شرمساری از اشتباهش بیمار شده بود وقتی هوور به او نزدیک شد عشق همچون رود بر گونه جاری شد او باعث نابودی هواپیما یک گران قیمتی شده بود و حتی می توانست باعث قربانی شدن زندگی سه نفر نیز بشود. شما می توانید خشم هور را تصور کنید. هر کسی می توانست انتظار زبان تیزونیش داری از سوی آن خلبان سریه لحجه و در این حال مغرور را داشته باشد که بابت چنان بیدقتی بر مکانیک جوان نصر شود. اما هور به مکانیک نه اخ می کرد و نه حتی او را مورد انتقاد قرار داد بلکه به جای آن بازوغاد ستبرش را دور شانه او برد و گفت من مطبعه نم دیگر هرگز چنین اشتباهی نمی‌کنی. و برای نشان دادن اطمینانم می خواهم هواپیمای افعل مرا فردا سرویس کنی والدین معمولا دوچار وسوسه می شوند کودکانشان را نکوهش کنند شما هم ممکن است انتظار داشته باشید من بگویم ای والده این کار را نکنید اما من این را نمیگویم بلکه صرفاً میخواهم تاکید کنم قبل از اینکه آنها را مورد نکوهش قرار دهید یکی از داستان های کلاسیک نشریه ژورنالیسم آمریکایی به نام قفلت های پدر را بخوانید این داستان در اصل به عنوان سرمقاله در نشریه رورنال خانگی مردم چاپ شد ما با اجازه نویسنده در این قسمت چکیده ای از آن را برایتان نقل می کنیم. قفلت های پدر از جمله قطعه های ادبی کوتاهی است که در خواندگان زیادی پژواک داشته است و به نوشته محبوب و مورد علاقه عموم تبدیل شد که بارها تجدید چاپ شد. نویسنده آن دبلیو لارینگستون لارند می نویسد قفلت های پدر از همان زمان چاپ اول در سطح نشریه خانوادگی و نشریه های ویژه مؤسسات و نهادها و در روزنامه های سراسر کشور به چاپ مجدد رسید و تقریبا به همان وسط هم به های خارجی ترجمه و چاپ شد. من به هزاران سخنران که دوست داشتند آن را در مدرسه، کلیسا یا در تریبون سخنرانی و کنفرانس برای حضار خود نقل کند اجازه شخصی دادم. در مناسبت‌ها و برنامه‌های بیشماری از آن استفاده شد. های دانشگاه دانشگاه‌ها و مجله‌های دبیرستان‌ها هم به نحوی عجیب از آن استقبال کردند. در واقع گاهی یک قطعه ادبی کوتاه به طرز عجیب و مرموزانه‌ای به نظر می‌رسد که انعکاس دارد و این نمونه هم دقیقاً همین گونه است. متن داستان قفلت‌های پدر نوشته یه دبلیو لرینگ ستون لارند گوش بده پسرم همکنون که تو خوابی این را به تو میگویم دست کوچکت زیر گونهت است و موهای فرفری خورمایی رنگت روی پیشانیت ریخته من تنها به اتاق تو آمدم همین چند دقیقه پیش که در کتابخانه مشغول خاندن برگهایم بودم منجه خفه کننده ی از ندامت و پشیمانی سراسر وجودم را فرا گرفت با احساس گناه نزد تو آمده هم حرف هایی که می خواهم به تو بگویم مطالبی هستند که این لحظه فکرم را مشغول کردند بسرم من همیشه با تو در تقابل مخالفت بودم وقتی لباس مدرسه ات را می پوشیدی به تو اخم کردم چون با حوله فقط صورتت را نوازش می‌کردی. من از این که کفشهایت را تمیز نکرده بودی تنبیهت کردم و کارهای سختی بر دوشت گذاشتم زمانی که بعضی از وسایلت را رو روی زمین انداختی بر سرت فریاد کشیدم موقع صبحانه هم اشتباهاتی در تو دیدم لباست را کسیف کردی لغمه هایت را نجویده گورت میدادی آرنج را رو روی میز گذاشتی هر چه زیادی روی نان میگذاشتی و وقتی از خانه بیرون میرفتی تا بازی کنی و من هم به سر کار میرفتم دستت را بلند کردی و گفتی خدا خداحافظ بدر و من اخم میکردم و در جواب گفتم دستت را بیانداز بعد ازور که برگشتم همه چیز دوباره شروع شد وقتی در خیابان به سمت خانه می آمدم به دنبالت او گشتم دیلم روی زانوهایت نشسته ای و تیله بازی میکنی سر زانوهای شلوارت رو دیدم که سراخ شده بود وقتی گوشت رو گرفتم و جلوتر از خودم به سمت خانه می کشندمت جلوی توستانت کوچک شدی و خجالت کشیدی از نظر من شلوارت گران قیمت بود و تو می بایست بیشتر مراقب می بودی اما تصور کن بسرم این همه سختی از طرف یک پدر؟ یادت می آید ساعتی بعد که در حال مطالعه بودم چقدر با ترس وارد اتاق شدی نگاهی معصومان و جریه در چشمانت بود وقتی سرم را از روی کتاب برداشتم و از آمدنت و وقفه ای که ایجاد کرده بودی اصابانی و بیحسله بودم تو یک لحظه دم در ایستادی. دادی بودی که وارد شوی یا نه بی مقدمه فریاد زدم چه میخوایی؟ تو هیچ حرفی نزدی فقط با انرژی زیاد به سمت من دویدی و دستانت را دور گردانم حلقه زدی و مرا بوسیدی دستان کوچکت با احساس محبتی که خدا در قلب تو افروخته بود و به هیچ وجه نمی‌شد از آن صرف نظر کرد مرا محکم فشار داد بعد از آن آنجا را ترک کردی و به سرعت از پله‌ها بالا رفتی پسرم همان لحظه بعد از اینکه رفتی کاغذ هایم از دستم افتاد و ترس بزرگ و آیندی مرا فرا گرفت این عادت من چه بلایی بر سرم آورده بود عادت به ایراد گرفتن و سرزنش کردنم رو می گویم. این بود هدیه من به تو به عنوان پسرم؟ هر کاری که در برابر تو کردم به علت این نبود که دوستت نداشتم به دلیل آن بود که انتظار و توقع بیش از هدیه از تو داشتم من تو را با بزرگسالی سالی همچون خودم مقایسه می کردم ویژگی های خوب زیادی بود که در شخصیت و رفتار تو ویدا بود قلب کوچک تو به بزرگی طلوع خرشی در تپه های وسیع بود این را انگیزه و محرک بی اختیار تو برای هجوم به سوی من و بوسیدن و شب خیر گفتن نشان داد پسرم از امشب دیگر هیچ چیز غیر از تو برای مهم نیست من در تاریکی پیش تو آمدم و با خجالت و شرم ساریزانو زدم این اقرار کفاری ناچیزی است که آن را می پردازم می اگر در زمان بیداری این حرفها را به تو می زدم معنی آنها را نمی فهمیدی. اما فردا من یک پدر واقعی خواهم بود می خواهم دوست سمیمی تو باشم وقتی تو رنج ببری من هم به رنجم و وقتی تو میخندی من هم بخندم هر موقع کلمات و جملات اجولانهی به زبانم آمد زبانم را گاز بگیرم و همچون یک آین و سنت همیشگی با خودم بگویم او فقط یک کودک است یک کودک خورد سال از اینکه که تو را به عنوان یک مرد تصور میکردم متاسفم اکنون که میبینم با خستگی به تخت خواب کوچکت غزیده ای و قرغ خواب شده ای در میابم که هنوز به یک نوزاد میمانی انگار همین دیروز بود که در آقوش مادرت خوابیده بودی من از تو توقع بیش از حدی داشتم توقع بیش از حد به جای محکوم کردن دیگران بهتر است سعی در درک آنها داشته باشی. بهتر است به این نکته پی ببریم که مردم کارهایی را که انجام می‌دهند چرا انجام می‌دهند و دلیل آن چیست این رفتار نسبت به انتقاد بسیار تر و مؤثرتر است و باعث ایجاد همدلی، تحمل و مهربانی می‌شود شناخت همه مساوی است با بخشش همه و بر اساس گفته دکتر جانسون خدا خودش تا آخرین روز زندگی در مورد انسان قضاوت نمی کند پس من و شما چرا زود قضاوت کنیم؟ قاعده اول انتقاد، نکوه، شکایت و محکوم کردم را کنار بگذاریم